جلسی پنج قواعد فقه و سیاسه محسن ممرزان علیه السلام بیست و مهر هزار بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در مورد بحث روش روشناسی اثبات قواعد فقه و سیاسه بود و به طور کلی قواعد چند نکته رو عرض کردیم من خدمت شما بزرگواران میخوام این بحث رو تکمیل بکنیم و تقویت بکنیم یکی از مواردی که ما عرض کردیم تمسک به بحث استدلال های است که ما میتوانیم داشته باشیم در بحث دیگه که ما داشتیم اینکه ما بخواهیم به یک علتی تمسک کنیم برای تعمیم خب من اینجا در بحث تمسک به تعمیم این تذکر رو میخوام بدم که در فضای افت سنت تمسک به تعمیم بسیار رایج بوده و محور استادلال ها که موسوم به قیاس هست در واقع تمسو که به علت در قیاس منسوسل علت جایگاه خلاصه ویژه ای داره و از طریق کشف علل است که کسی اطبعای قیاس می‌کنه و به مقوله و منبع قیاس تمسک میکنه خب آیا این مقوله در فضای شیعی قابل قبول هست یا خیر اگر ما بخواهیم بفهمیم که تأثیر این مقوله چیه اینه که در قیاس در واقع یک مورد حکم یک مورد به موارد دیگه تأثیر داده میشه بعد در این مورد ما ظرفیتی می توانیم سراغ بگیریم برای تاسیس قاعده تاسیس قاعده و به تعبیر عرب ها تبعید در عربی موجود به تاسیس قاعده میگم تعقیب تبعید یعنی قاعده سازی تاسیس قاده چگونه رخ میده؟ متکی بر تعمیم ای یک حکمه از یک مستاق دو مستاق ما اگر بتوانیم فراتر بریم خوب این بهش گفته میشه قیاد قیاس قاعده چیست؟ قاده یک حکمه کلیست که در مصادیق مختلف در فروع فقهی ظاهر میشه اگر ما بخوایم یک قاعده فقهی درست کنیم طبیعتا باید موضوع عام می داشته باشیم خب نقش علت در این مورد اینه که در واقع میتواند حکم با کشف وسعت دایره یک موضوع یک قاعده برای ما به ارمغان بیاره پس علت میتوانه در واقع به شما بگه که یک مورد کافی نیست و این حکم در بنده یک مورد نیست در واقع پل رسیدن به قاعده اینه که حکر رو شما محدود به یک موضوع نکنید فراتر رفتن از یک موضوع به موضوعات و به در واقع از این مسادیق محدود یک موضوع به مسادیق متنوع می تواند در واقع پایگذار قاعده سازی باشه خب شما با کشف علت میتوان حکم رو به مصادیق متعدد خلاصه تسریه داد و تعمیم داد از این طریق کشف علت یک راهیست برای در واقع تعمیم حکم به مصادیق متعدد در چه مقولهی؟ در فروعات فقهی، در احکام فرعی ما احکام فرعی که میگهیم قید برای اینه که احکام غیر فرعی یعنی غیر فقهی خارج بشه در واقع کشف علت از این طریق خلاصه میتوانه ما رو دستمون رو به موضوعات متنوعی برسانه خب آیا سوال؟ آیا کشف علت در نگاه شیعی هم میتواند در واقع از حجیت برخوردار باشه برای تأسیس در واقع تأسیس قاعده میتوانه مفید باشه خب ما برای پاسخ به این باید ببینیم آیا مشکلی داریم یا نه در قیاس در قیاس ما اگر در قیاس منسوس الالت مشکلی برای تعمیم نیست به تعبیر دیگه در واقع با کشف علت از طریق تنسیس بر علت ما پی میبریم به به عمومیت حکم نزد شارع ما پی میبریم نه اینکه در واقع ما بخواهیم خود مشتهد بخواهد در واقع منعندی و از جانب خود حکم رو خلاصه تعمیم بده از زیق خناق ما این تعبیر رو به کار میبریم بلکه زیق خناق هم نیست یک تعبیر تسامحیه بنابراین تعمیم در واقع مفهوم تعمیم در این مورد به معنای کشف و استنباط اومیت حکم برای موضوع مفروضه بنابراین اینجا مانه این نیست در موارد غیر منسوس اینجا ما دچار مشکلیم در واقع ای ای مشکل در کشف علت تامه و کشف عدم موانع خلاصه دشوار است اونجایی که حکم دایر مدار یک علتی میشه با در واقع دائر مدار شدن یک حکم بر یک علت به معنای این است که در واقع شعر متعال علت دیگری رو در نظر نگرفته است. اگر واقعا تنسیز شده باشه به اون تصریحی به اون شده باشه ما کشفش بکنیم اما در موارد غیرمنسوس و مستنبتال علم ما دوچار این مشکل هستیم که نمی توان خلاصه به راحتی و به صورت قطعی به کشف علت خلاصه رسید این به این معناست که خلاصه تعمیم تعمیم مزبور توسط ما با دشواری اثباتی خلاصه مواجهه خب حالا این مورد چقدر در فضای شیعی وجود داره حالا یک جاهای علمای شیعه با در واقع احل بیت علیهما السلام و علمای شیعه با نفع قیاس خلاصه غیر و قیاس غیر کاشف در واقع تعمیم و قاعده سازی از طریق قیاس رو قیاس و در واقع بگیم از طریق کشف علت رو نفی فرمودند مگر اینکه که به هر حال واقعا ما بتوانیم اون مشکل رو حل بکنیم خب در موارد دیگه چطور اگر ما بتوانیم کشف بکنیم آیا مورد قبول هست من به عنوان نمونه بحث در واقع این مورد رو از بعضی فقرات فقهی معاصر خدمت شما می میکنم از کتاب مونیتولیم تالفی هاشیت المکاسه تو بحث در بحث نکاه توسط مثلا عبد نکاه عبد اونجا حالا با موردش کار نداریم عبارت رو من کار دارم خلاصه در نکاح توسط عبد ما این تعبیر رو میبینیم فتعدی من حاضه الموارد الا مطلق نکاح الفضولی در این عبارتی که میخوام ارز کنم روح این مطلبی که ارز کردم به تصریح به طور نمونه آمده که اگر ما علت رو علت منصول سر رو داشته باشیم آیا میتوانیم تعدی بکنیم میفرمایم فتعدی من حاصل موارد الا مطلق نکاح الفزولی فل فضلن انصار عقوده خب این مورد رو فعلا کار نداریم فتعدی مشکل و لا و چلهو لان المناطف الاستفلال ال ال این که شاید بهتر بود که اذا ال ال منصوصتا فیتعدا فریعت من منها الا کل موردن تو جدفی الاله بله اگر علت منصوص باشه ما اگر کار این مورد رو پیدا بکنیم منات در استطلال برای ما حاصل شده ما میتوانیم به علت منصوص تمثب کنیم به هر موردی که در اون علت وجود داره ما تعمیم بدیم حالا در این مورد ای توضیح می فرمان بند بعضی فقرات رو دیگه کار ندارم با حذف بعضی فقرات ارز میکنم به جمله استفاده و حکم غیر ما رفی اما زک رفی علا انها منها ما ازا علم ادم الفرق بین ما و غیره این پشترون عبارته ای خب این یه مورد یه قسماتش هزم میکنم و منها ها کانم پس اونجایی که فرق در مورد مثلا قائل هست و علم پیدا شده به تفاوت خب حکمش متفاوته عبارته نمیخوامم و منها ما ازا کانم مشتملن علا علت لا یحسن و تعلیل به ها ال اضکانل علت به منزلت کبرل کلیه و موردو به منزلت سهرا خب اون تعبیر تعبیر گوای خوبی بود از این جهت که میگه اگر منسول اللا باشه اون علت رو میتیم به هر جایی که اون علت وجود داشته باشه پس بعد یه اثبات وجود علت در یک موردام بکنیم صرف اینکه خبرای ما تمرکزش بر وجود علت کفایت نمیکنه. تو مورد هم ما باید اون علت رو پیدا کنیم هر جا که اون علت بود قابل تماسوک هست اما یه جایی هم ممکنه نباشه و از موارد ممکنه قابل استدلال نباشه خب حالا اگر علت بود تأثیر وجود علت چیه؟ تأثیر در واقع وجود علت اینه و تحقق علت بدون گونه است که در واقع علت به مسابه کل... کبرای کلی خلاصه در نظر گرفته می شود شما در قاعد سازی چی میخواستید؟ اینکه که یه کبرای کلی به دست بیارید اگر کبرای کلی به دست آوردید با کشف علت اب نداره بعد با وجود در, در واقع مورد با تحقق و کشف و شناسایی با شناسایی یک مورد از تحقق علت میتوان اون کبرای کلی رو بر اون تطبیق کرد اون مصداق میشه بر تطبیق اون کبرای کلی بنابراین مرحله پیشترینه که ما ابتدا بیایم اون علت رو در مقام استنباد کشف کنیم اگر منسوس الالله بود یا نه فرض بکنید منسوس الالله نبود اما به منزله به مسابه اون بود ما به طرق مختلف کشف کردیم که خلاصه این علت وجود داره ما میتوانیم به اون مورد تمسک کنیم و به تعمیم رو خلاصه از دل اون در بیاریم بنابراین اقامه استدلال برای عمومیت یک راهش اینه که ما به سمت کشف علت بریم خب اونجایی که علت درست نیست اونجایی که علت قابل پذیرش نیست اونجا ممکنه متفاوت باشه و ما نتوانیم به خلاصه کشف اون مورد برسیم بنابراین یک نکته اساسی در بحث قاعده سازی اینه که ما از راه کشف علت وارد ولی علت واقعاً باید شناخته بشه باید اثبات بشه اگر اثباتش کردیم خب میتوانیم از این طریق ما به در واقع قاعده سازی خلاصه وارد بشیم به تعبیر دیگه اینجا مفهوم دیگه ای هم ما می توانیم به کار ببریم. اون چیه؟ اینکه بگیم ما منات رو کشف بکنیم. اگر منات رو کشف کردیم می توانیم اون منات رو خلاصه پیدا بکنیم. برای این اساس یک تعبیر دیگه هم اینجا میشه ما به کار ببریم راههایی که یه جایی منسوسه یه جایی غیر منسوسه سؤال اینه که حکم اون غیر منسوس رو ما چگونه به, کار ببر... چگونه به دست بیاریم اشان یه تعبیر جالبی دارن جمبندی خوبی میکنن در یه فقره دیگه مونیت و جلد یک صفحه دیس می و بلجمع استفادت تو حکم غیر ما زک رفع نست اما زک رفیه علا انهاین پس یه جایی منسوس الاله است یه جایی هم برحال ما می‌خوایم یا موردی حکمش ذکر شده اون جایی که حکمش ذکر نشده اون رو می‌خوایم به دست بیاریم اولی مورد میگن منها ما ازا علم عدم الفق بین ما زک و غیره ما باید بفهمیم که اینجا فرقی وجود نداره و مثال میزنن. و من ها مع ازشت عمل کلام و الان مورد و غیره. یه عمومیتی ما داشته باشیم اون عمومیت رو کشف بکنیم کنیم خودی کلام یک عمومیتی داشته باشه. اون موردی که در مثلا سوال و جواب هست اون موردی که در روایت هست. ما بتوانیم فراتر از اون مورد بریم. مثال میزنن کم و احاز سوئ ان رجل شک کفه سجود بعد ما فقیل فیل کل ما شک تفی شایعن و دخلطقی غیره و شک وک لس موردش یه مورد بوده. ولی جمله و کلام روایت یا آ شریف مشتمل بر یک عمومیتی باشه. میگه کل ماشککت فی شیءن و دخلت فی غیر فشکک لیس این بندی خدا در مورد سجود فقط پرسیده ولی پاسخ فراتر از اون جمله مثلا کُلما شککتا داشته باشه اون مورد رو شامل بود ولی حضرت فراتر از مورد رو هم گفتن خب اینجا لزوماً تعلیلی نیومده فقط حک رو تعمیم داده اما مورد سوم اینه و من ها مشتمل هم مشتن ال علت لا یحصن و تعحلیل و به ها اللا اعذاکانل اللا, اللا به منزلت کبر ها، الکلییه و مواردو به منزلت سخرا اون موردی که ذکر شده در کنارش علتش هم آمده باشه ببینید یک اون مورد قبلی مورد دوم این بود که خودش جمله اون موردی که ما میگفتیم نص باشه بر عمومیت تصریح بر عمومیت باشه یا این موردی باشه از اجتماع کلاع علا عمومه یا نه شامل برای نیست ولی چی شما میدانید که محدود به اون نیست تو اون مثال اول شما علم دارید به عدم فقر مثلا کما ازا سوال انراد جلن سلا به غیر وضوع فقیله یا خب فقط دمود اون مرد نیست دمود کسای دیگه هم این می توان باشه نکته خاصی نداره که اون عاده سلات بکنه ولی شما عاده سلات نکنید از بیرون میدانید ارتکاز ارفین هست که فرق نیست اون رجل با اون رجل فرق نداره یا موارد با هم واقعا فرق نکنند یا جمله بر اجتمال بر عمومیت داشته باشه یا این که یه علتی داشته باشه بعد اون علت به گونه ذک شده باشه که به منزله کبرای کلی باشه و اون مورد فقط یه صداق براش تلقی شده باشه. منها ما ضاکان هم مشتملا علت لا یحسن تعحلیل و بهه ها الاعذاکانل علت به منزلت کبرکلییه و مورد به منزلت سقرام مثال جالب میزن که و لوقیله لا تشل هم ل مسکر خودش تعلیل کرده باشه. لنه و مسکر اون مورد قبلی تعلیلی نبود ولی اینجا تعلیل هست لا تشوال خمر چرا لنه و مسکرون پس الان بحث رفت سر مسکر بودن هر موردی که مسکر باشد چه خمر باشد چه غیر خمر چه خمر رقیق باشد چه خمر قلیز این اسکار درش هست بعد تو حالا اون بحث نکای ابدم میگن که مورد این گونه است و اخبار و باب نکاه من منحاز قبیل که مثلا یه مورد رو میتوانه خلاصه اون عبد نکاه بکنه نکنه و یه اون که من قبیل القسم الاول به الغاه خصوصیت سیاده حالا تو اون مورد ببینید پس یا شما باید تنق منات کنید علم پیدا کنید به عدم فرق پس تعبیر دیگه برای القای خصوصیت اینه که شما بگید آقا این فرقی نداره این مورد با موارد دیگه خب دایرش هم محدود به همین بعد مثلا حالا روایت موارد دیگه هم ازش من می کنم مواردی که ارتباط چندانی نداره پس این هم یک مورد بسیار مهم بود که ما ببینم عبارت دیگه هم میشه پیدا کنم خدمت شما کنم خب در اینجا یک بحث مهم داریم و اون چیه ما فرقی باید بین علت تشریف و علت حکم قائل باشیم چگونه ما باید ببینیم آیا علت هم یه معقوله مهم اینه که علت هم انحصاریست یا انحصاری نیست چگونه میتوان اگر می‌خوایم بریم سراغ کشف علت از مقدمات حکمت ما باید کنیم برای کشف انحصار علت همونطور که باید بین علت تشریف و علت حکم ما تفکیق قائل بشیم من فقره ای رو از مرحوم نجموادی میخوانم که ایشان در کتاب از رسال فقیتشون بحث تقریراتشون یه جاهایی تقریر مرحوم ناینی رو دارن تقریر مرحوم اسفانی رو دارن مرحوم نجموادی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه دف شدن از بین قبل رایت الله و شهید متری اون بسط هستن تقریر بحث جالبی دارن جالب این که در یه فقره بحثشون هم به نظرم مرحوم آغازیا و مرحوم ناینی رو که تقریر میکنش تو برس کردم مرحوم اسفانی مرحوم آغازیا و مرحوم ناینی رو این فقره ظاهرن بیان مرحوم ناینی باشه یه بحثی هم ایشان دارن از آقازاده ولادت حقی هم یه تغییراتی در اون مجموعه شون اومده. خب ببینید اینجا ما کشف علت رو می از صریح بعضی موارد استفاده کنیم. بعضی جون از مفهومم ممکنه استفاده کنیم. ایشان در یک موردی در بحث صلات دارن میفرمایند این جمله رو دارن و فیه یه نقدی میخوان بزن مثلا قبلش گفته میشه که این نمال اشکالو فی المقاب خوبه انهو اللل فی روایت سنجاب به انهو يجوز و سلات فی لا لایاکل و لحم یه تعلیلی آمده لایاکل و لحم بعد میگن فیتخیل و کنا مخصصتن روایت المنف خب یه تعلیلی آمده تعلیل چیه؟ لا کل لحمه در بحث سنجاب بعد از این یه حکمی از منظرشان تخیل شده و اینه که مخصص روایاتیه حال با اون کار نداریم جمله اینه بعد نقد می میگم و وفیه انهو علالا فی روایت ها فلان کار کارو مزگونش نداریم فی اصطلاح مفهوم حاضر روایت کونال ال عم م ماهیه مذکوره تن فی روایت سنجاب از مفهوم یه روایت میفهمن که این مورد این علت اعم از اون چیزی است که در روایت سنجاب آمده بعد اینجا تفکیک میکنن بین علت تشریع و علت حکم و کونها علتن لتشریر لا ل للحکم حتی یدور مداره ها میخوان بفرماین که اگر علت تشریع بود نه دیگه حکم دایر مدار اون نیست بلکه باید حکم بلکه باید اون علت, علت حکم باشه تا حکم دائر مدار اون باشه خب پس الان از این منظر علت تشری کفایت نمیکنه. برای اینکه شما تمسک به یک علتی بکنید از منظر ایشان علت از منظر مرحوم در واقع ناینی علت تشری در واقع کشفش فایده نداره کشف علت تشری برای تعمیم کفایت نمی کند بلکه باید علت حکم در واقع کشف شود تا بتوان از طریق اون به تعمیم خلاصت دست یافت تعمیم همینطوری نمیشه و در این مورد ایشان این بیان رو دارن که ولو اینکه ظاهرش تعمیمه. اما این تعمیمه که گفته لا یو کلو لحم لعنهو لا, لا یو کلو لحم اینجا شما نمیتوانید ازش استفاده بکنید بعد مثلا اون رو ببرید برای تخصیص روایت دیگه حالا با اون موردش کار نداریم ای اینجا ای حالا یه انگلتگلت هایی هم داره مثلا میگه لا یو قال الالف الالا اخس و نستانیه خب دو طرف علت داریم یکی مف... از مفهوم این علت فهمیده شد اون طرفم خود روایت علت ده میگه او ساق این مباحث نرید فلا بوت من العمل فيها بما يعمل في مطلق العام و الخاص خب حالا اینو کار نداریم. در پاسخ این فقره عبارتی آمده که مفید لننا نقول ليس الامر کذلک بو اینکه نه فعن نه اذا وردت علتان للحکم بحث یکون احد ام ان و ما اخص والاخر اعم یستکشف ذلک ان یستکشف ال و ذلک ان کون ال علتان و عدم انحصار اللیبل اولا این نکته ظریفیه ببینید ما یه مقوله داریم که آیا اگر علت رو کشف کردیم می توانیم تعبیم بدیم میگیم بله اما یه بحث مهمم داریم که آیا یک امری یک علت داره یا ممکنه دو علت داشته باشه اینجا میفرمن که اگر دو علت داشتیم یکیش عم بود یکی اخه این در واقع نشان میده که علت دو تاست و علت یکی نیست چرا؟ چونکه تعارض بین اینها نیست و تخصیص هم اینجا امکان داره لعدم تعارض بین ما لن نه تخصیص الام بلخواست و غیر مورد الالت این نما یکونو تعارض خب اینا یه فقرات جالبی بود که در واقع اگر ما بخوایم بریم از راه تعلیل و اینها کشف حکم بکنیم و تعمیم بدیم باید یه نکته هایی رو در نظر بگیریم خب یه نکته بسیار مهمه دیگه اینجا ضرورت در واقع توجه به مقدمات و بکارگیری مقدمات حکمته اگر ما کشف علت میخواییم بکنیم خلاصه میتوانیم از این مقوله استفاده کنیم بلکه یه جاهایی باید این جو مرکوم در در میان استدلا یه جو میگن لایقه که اینال الا فلولا <تصفح> ظاهره فی کناء الا لالهک به خلاف سانیا فانها ظاهره فی کناء الا لتشری مواردش حالا کار نداریم بعد میگن فلولام تا کن الا ت تشی فللزم فلان خب بعد در پاسخ میگن زور اولاف الالیه والانحصار این نماکانه به مقدمات الحکمه به انیقال این نماکانه عليه السلام فی مقام البیان و قد زکر حاضل الله و لوکانت اللتن اخرال لکان لازم ایزکر و غیر کم کما هوت طریقت رو استفاده بهت انحصار اللفی باب مفاهیم مناخشه میکنن تو این مورد که آه تک اللتیه دو اللتیه یا نه مقدمات حکمتی که اینجا میفرمن خب یه علت گفته در مقام بیانم بودن اگر دیگه ای داشت میفرمودن دیگه پس شما انحصار رو از مقدمات حکمت میفهمید انحصار در الیا د خود الیا تو فعلا هزا فعلا سه تا از دلیل آخر ایلاط نخرا عام فطرت لون مقدمات من اصل فعلا یاب قابل انحراف مجالون خوب اینجا برول ریزکاری های داره که قابل تماس است بعد در این بحث به علت تشریح و علت حکم پس یه توجه جدی باید بشه و خلاصه مقولهای مرتبط با یک دیگه اینجا در نظر بگیره و در یه فقره می فل عمده معرفت کن علت ال الحکم او تشریح بعد تو اون مورد مثلا میگن اینجا اجمال بعد میگن حتى اقل که كلا اقل من اف احتفافي بما يسلو للقرينيه اي يسلو لان يكون الاه الحكم وتشريع پس نکته ظریفی که از اینجا از بیان مرحوم نایینی با تقریر مرحوم نا... مفهوم اول فذه نجماوادی به دسمیا اینی که حتی اگر ظاهر کار رو شما دیدید تعلیل رو هم پیدا کردید باز خیلی راحت نمیشه به بحث بپردازید یعنی زود بگیر این علت تعمیم بدیم نه نکته سنجی‌های های بسیاری در اینجا میتوانه وجود داشته باشه و به راحتی شما نمیتوانید اکتفاق کنید بگید خب آقا علت رو ما کشف کردیم پس تعلیل می کنیم پس تعمیم میدیم. خب نه اینجا باید در واقع به صورت جدی کار اجتهادی کرد در واقع با تفکیک علت و علت تشریف و علت حکم بحث رو پیش برد یک بحث دیگه بسیار مهمه اینه که ضرورت در واقع تفکیک علت و حکمت یه جایی ما کشف علت میکن کشف در واقع حکمت میکنیم این گونه نیست که هر جا که ما فوری دیدیم مثلا یک موردی رو گفتیم آقا به ذهن قاصرمون رسید که این علت خیر یک جایی در واقع ممکنه ما علت رو کشف نکرده باشیم خب یه جایی تسریحه یک جایی هم نه ممکنه تفاوت داشته باشه تصریح نباشه شما میخواید به دست بیارید اما همون جایی هم که شما پیدا میکنید باید دقت کنید در مجموع آیا اون علت هست یا حکمت یک جایی به هر حال این مشکلات هم هست بنابراین اون هم اون علیت های مستنبت رو خیلی راحت نمیشه به دست آورد و هم وقتی که به دست آوردید باز جای تحلیل ه... جای بحث هست ببینید من مثلا از جواهر موردی رو میارم که بحث کر... فرمودن و علت مستنبطه رو نفی می‌فرمایند جلد 15 صفحه 160 به بعد. در موردی میگه می فرمواند و کیفکان فالحکمون مقتوم بهی فی کلام الازحاب کما طرف بهی غیر واحدن الا انهم اختلافو فی تعلیلهی اختلافن یختزل اختلاف فل الحکم بعد فرمودن دروس و روزه مثلا گفت تعلیل کردن به انها نفسا و نفاس و مرزون فتندرجو فی نهی ان المریضه خب ولی چیه فازلان گفت تعلیل فرمودن به این که مثلا این ازرار به مالکه خب پس الا صفحه 161 میفرمان الا انال جمعی کماتران الا انال جمعی ترا از لا یخ رجو بزالکه ان الالت لا لا اقلم نشک این دو نظریه که رو به رو هم ما پیدا کردیم صاحب جوار می‌فرماد که آقا اینا رفتن تحلیل کردن این دو فاضلان یه جور تحلیل کردن اون بزرگواران دیگه دروس و روزم یه جور دیگه درش تحلیل اومده خب اما این تحلیل به درد می‌خوره یا نمیخوره؟ خیر چرا چون که این تحلیل این علت مستنبت حتی اغلی که ما شک داریم دوچاره تردید میشیم که این علت مستنبت است یا خیر وقتی هم که شک باشه فیدت تجاهی نزن الامل و به اطلاق نهی نه ما دیگه مثلا این ورحک رو ای نمیتوانیم عمل کنیم اون طرف که طبیعتاً باید بگیم مثلا یقینی دلیل خاص خودش رو داره بنابراین این صرف کشف در واقع علت مستنبت کفایت و شما در واقع خلاصه جای تقرید برای شما خواهد بود این عدم کفا کفایت علت مستنبته باید در نظر شما باشه در ذکر شما باشه که اگر یک جای علت مستنبته بود خلاصه معلوم نیست به درد بخوره بلکه باید به عدله دیگه پرداخت و به اونها تمسک پیدا کرد یه دو سه دقیقه استراحتی به الله حمدم.